بخش هفتم، نابو سیاه پوستی که فرشتگان را در انتظار می گذشت. نابو میان کومه یونجه به روی شکم دراز کشیده بود احساس می‌کرد که بوی شاش استبل به بدنش چسبیده است خاکستر گرم آخرین عزبها را بر تن قهوه‌ای و بر خیش حس می کرد. اما از بوی پوستشان اثری نبود نابو چیزی حس نمی کرد گویی با آخرین ضربه سم اسب به پیشانیش به خواب فرو رفته بود. و حالا آن ضربه تنها احساسی بود که داشت. چشمانش را باز کرد و دوباره بست و آنگاه با تنی کشیده و خشک همچنان خاموش ماند. زیرا تمام بعد از ظهر را احساس کرده بود که بی زمان رشد میکند. تا اینکه کسی پشت سرش گفت بیا نوو اندازه کافی ای نبو برگشت اسب‌ها را ندید در بسته بود به فکرش رسید که حتماً اسب‌ها جایی توی تاریکی هستند گرچه صدای پا بر زمین کوبیدن بی‌قرارانشان را نمیشنید خیال کرد کسی که با او حرف میزند بیرون استابل بود چون در را از تو بسته بود و معانهی پشتش گذاشته بود یک بار دیگر صدایی پشت سرش گفت خیلی خوب نبا. دیگر و اندازه ای کافی خابیده ای تقریبا سه روز است که در خوابی آن وقت بود که نبو و چشمانش را کاملا باز کرد و یادش آمد من به این دلیل اینجا هستم که عصبی لگدم زده زمان را گم کرده بود روزها را پشت سر گذاشته بود انگار کسی آن شبهای دور شنبه که به میدان شهر میرفت اسفنجی نمناک کشیده بود پیراهن سفید را از یاد برده بود فراموش کرده بود که کلایی سبز داشت که از نیهای سبز درست شده بود و نیز شدوار کوتاهی به رنگ تیره تنش بود فراموش کرده بود که کفش به پا ندارد نابو شبهای شنبه به میدان میرفت و در گوشه ای خاموش مینشست نه برای گوش دادن به موسیقی بلکه برای تماشایان مرد سیاه پوست هر شنبه او را میدید سیاه پوست اینه که دور شاخی به چشم میزد که به گوشهایش بند شده بود و در یکی از ارکسترها به ساکسیفون میپرداخت نابو مرد سیاه را میدید اما او نابو را نمیدید دست کم اگر کسی متوجه شده بود که نابو شبهای شنبه برای دیدن سیاه به میدان میرود و از او میپرسید حالا نه چون دیگر چیزی به یادش نمیامد آیا تا به حال مرد سیاه پوست او را دیده نابو میتوانست بگوید نه تنها کاری که پس از تیمار کردن از پا می کرد تماشای مرد سیاه پوست بود یکی از شنبه ها مرد سیاه پوست سر جای خود توی ارکستر نبود نبو ابتدا فکر کرد که شاید دیگر نمی خواهد در مکان های عمومی با وجود اینکه آنجا جایگاه موسیقی بود به نواختن موسیقی بپردازد گرچه بعد با خود فکر کرد که مرد سیاه پوست چنبه دیگر به آنجا میگردد. به این دلیل که آنجا جایگاه موسیقی بود اما چنبه دیگر او بر نگشت و جایگاه موسیقی نیز دیگر سر جایش نبود نابوب پهلوی دیگرش غلطید و مردی را که با او حرف میزد به چشم خود دید اول او را که در تاریکی استابل مف مینمود نشناخت مرد روی تیرکی پیش آمده نشسته بود، حرف میزد و آهسته بر سر زانوانش میگفت. نابو که میکوشید، آن مرد را بشناسد بار دیگر گفت، از بیلا زد. آن مرد گفت، بسیار خوب، حالا دیگر اصف ها اینجا نیستند و ما توی دست یم سرایان منتظرت هستیم. نابو سرش را تکان داد. هنوز فکرش را به کار نینداخته بود اما حالا که فکر می کرد به نظرش می که آن مرد را جایی دیده نابو نمیفهمید اما به نظرش هم عجیب نمیامد که کسی چون این حرفی به او بزند چون هر روز انگام تیمار کردن اسبها از خودش آواز هایی می آنها را سرگرم کند آن وقت همان آوازهایی را که برای اسبها ها بود در اتاق نشیمن برای سرگرم کردن دخترک گنگ دوباره سر میداد. هنگام انگام آواز خواندن اگر کسی می گفت که می خواهد او را پیش هم ببرد در شگفت نمی شد. حالا حتی کمتر از آن دچار تعجب شد. چون دیگر هواسش کار نمی کرد. حالتی فرسوده، کودن و حیوانی پیدا کرده بود. گفت میخواهم بدانم که حصف ها کجا هستند؟ آن مرد جواب داد من که قبلن به تو گفتم حصف ها اینجا نیستند تنها چیزی که مورد علاقه ماست در اختیار داشتن صدای نزیر صدای توست و شاید نابو افتاده در میان کومی یونجان حرفها را میشنید اما نمی توانست دردی را که لگد اسب بر پیشانیش به جا گذاشته بود از حواس آشفته و در هم ریخته دیگرش تشخیص دهد سرش را روی کومه گذاشت و به خواب رفت با اینکه مرد سیاه پوست دیگر میان گروه نوازندگان نبود نابو مدت دو یا سه هفته همچنان به میدان میرفت شاید اگر میپرسید که چه بر سر مرد سیاه آمده یکی پیدا میشد که جوابی بدهد اما از کسی نپرسید و همینطور در کنسرت حاضر حاضر میشد تا اینکه مرد دیگری با ساکسیفون دیگری جای سیاهپوست را گرفت. انگاه نابو متقاعد شد که سیاهپوست دیگر بر نمیگردد و تصمیم گرفت که به میدان نرود. وقتی بیدار شد فکر کرد که مدت کوتاهی خوابیده است. بوی یونجه نمناک هنوز هم بینیش را می سوزاند. تاریکی، همچنان آنجا در برابر چشمانش کمین کرده بود، او در محاصره تاریکی بود، و مرد هنوز در آن گوشه بود. صدای هم آرام مرد که بر سر زانوانش می گفت می گفت ما منتظر تو هستیم، نبو. تقریبا دو سال می شود که تو در خواب هستی و از بیدار شدن خودداری می کنی. آن وقت نابو بار دیگر چشمانش را بست و دوباره گشود و آن گوش خیره ماند و باز هم آن مرد را دید حالتی آشفته داشت و از خود بیخود بود تا آن وقت بود که او را شناخت اگر اهل خانه میدانستند که نابو شبهایشن به در میدان چه کار می‌کند، شاید به فکرشان می رسید برای چه دیگر به میدان نمی رود. چون حالا موسیقیش در خانه به راه است این موقعی بود که برای سرگرم کردن دخترک آن گرامافون را به خانه آوردیم از آنجایی که برای کوک کردن گرامافون همیشه به کسی احتیاج بود طبعاً این آدم جز خود نابو نمیتوانست باشد میتوانست این کار را انگامی که از پا نیازی به تیمار نداشتن انجام دهد دخترک همچنان سر جای خود نشه است به صفحا گوش می داد گه گاه وقتی که موزیقی مترنم بود دخترک از صندلی خود بلند می و با حالتی مسخره همچنان خیره به دیوار خود را کشان کشان به ایوان می رسند. نابو سوزن گرامافون را بلند می کرد و خود به آواز خاندن می پرداخت در ابتدا وقتی برای اولین بار به خانه آمد و از او پرسیدم که چه کاری از دستش برمیآید؟ آید، نابو گفت که آواز بلد است اما این حرف توجه کسی را جلب نکرد ما به پسر بچه احتیاج داشتیم که عصبها را تیمار کند نابو پیش ما ماند، اما به آواز خواندنش ادامه داد انگار که او را عجیر کرده بودیم تا آواز بخواند و کار تیمار کردن اسبها، فقط برای سرگرم کردن او بود تا کارها را آسان تر کند بیش از یک سال بدیمنبال گذشت تا اینکه ما به این نتیجه رسیدیم که دخترک دیگر هیچ وقت نمیتواند راه برود هرگز نمیتواند کسی را بشناسد همیشه همان دخترک بی و تنها خواهد ماند که با نگاه سرد خیره شده به دیوار به گرامافون گوش میدهد او را از صندلی بلند کنیم و به اتاقش ببریم پس از آن دخترک باعث آزار و زحمت ما نبود اما نابو همچنان امیدوار و دقیق گرامافون را راه میانداخت. این این مقارن ایامی بود که نابو هنوز شبهای شنبه به میدان می رفت. یک روز وقتی پسرک توی استابل بود کسی کنار گرامافون صدا زد نابو ما در ایوان بودیم و چون کسی نبود که او را صدا کند آن را جدی نگرفتیم اما وقتی برای بار دوم شنیدیم نبو سرمان را بلند کردیم و پرسیدیم کیه پیش دختر؟ و کسی در جواب گفت من کسی را ندیدم که بیاید تو و دیگری گفت مطمئنم که کسی نبو را صدا میکرد. اما وقتی به دنبال صدا به اتاق رفتیم تنها دخترک را دیدیم که به دیوار تکیه داده است. نابود زود برگشت و رفت خوابید. شنبه بعد دیگر به میدان نرفت، چون به جای پوست کسی دیگر را آورده بودند. و سه هفته بعد، روز دوشنبه وقتی نابو در استبل سرش گرم بود، آهنگی از گرامافون برخواست. ابتدا مایه نگرانی کسی نشد. فقط اندکی بعد وقتی پسرک را دیدیم که آباز میآید و هنوز از شست و شو یا از پاقیس آب است، از او پرسیدم چطوری رفتی بیرون؟ گفت، از در از در ظهر تا حالا توی استبل بودم پرسیدم، گرامافون دارد میخواند صدایش را نمی و نابو گفت که چرا میشنود؟ پرسیدم، کسی کوکش کرده؟ و او همچنان که شانهایش را بالا میانداخت گفت دخترک این کار را کرده حالا دیگر مدت هاست که خودش کوک می میکند اوزا بدین قرار بود تا یک روز متوجه شدیم که نابو به روم میان کمی یونجه دراز کشیده و با نقشی از نعل اسب بر پیشانی در استعب را به روی خود پسته است وقتی شانههایش را گرفتیم و بلندش کردیم نابو گفت عصب نگه زد و من اینجا افتادم. اما کسی به او گوش نکرد تمام توجه ما به چشمان سرد و مرده و دهان پر از کف سبزش جلب شده بود تمام شب را همچنان که از تب می به گریستن پرداخت و حالتی از یانگونه در باره ای که در استبل میان کومه یونجه گم کرده بود پرت و پلا می گفت. اولین روز بدیم منبال گذشت. روز بعد، وقتی چشمانش را باز کرد گفت، تشنه هستم. و ما برایش آب آوردیم. آب را به یک جرعه سر کشید و دوباره آب خواست. پرسیدیم حالش چطوره و او گفت احساس می کنم گنگار از لگدم زده. سراسر شب و تمام روز را حرف زد. دست آخر توی رخت خوابش نشست و با انگشت سبابه به جایی اشاره کرد و گفت که صدای تاخت چهار نل از با تمام شب خواب از چشمانش رو بوده است. اما تبش از شب پیش غد شده بود. دیگر از یان نمی گفت اما همچنان حرف میزد تا اینکه دستمالی دست دم دهانش گذاشتند. آنگاه نابو دستمال در دهان شروع و آواز خواندن کرد. می گفت دم گوشش صدای نفس کشیدن از پای کور را میشنود که از فراز در وسته آن پشت در انتظار آب هستند. وقتی دستمال را از دهانش درآوردیم تا غذا بخورد، او به طرف دیوار چرخید و ما همه فکر کردیم که خوابش برده و شاید هم مدتی در خواب فرو رفته بود. اما وقتی بیدار شد دیگر در رخت خواب خودش نبود. پاهایش بسته شده بود و دستهایش نیز به یکی از ستونهای اتاق بسته شده بود نابو با حالتی به دار کشیده شروع به آواز خواندن کرد وقتی نابو آن مرد را شناخت گفت من قبلا تو را دیدم و آن مرد گفت هر شنبه به میدان میامدی تا مرا تماشا کنی و نابو گفت درست است؟ اما فکر میکردم که من تو را میدیدم و تو مرا نمیدیدی و آن مرد گفت هرگز تو را ندیدم اما بعدها وقتی دیگر به میدان نرفتم حس کردم که انگار کسی دست از تماشای من در روزهای شنبه برداشته است و نابو گفت تو هرگز برنگشتی اما سه یا چهار چونان با رفتم چنان به آنجا میرفتم مرد کنوز بی حرکت بود در حالی که دست بر سر زانوانش می کوبید گفت نمی دوباره به میدان برگردم گرچه تنها کاری بود که از هر کار دیگری با عرضشتر بود نابوسعی سعی میکرد بنشیند میان کومه یونجه سرش را تکان میداد هنوز صدای سرد و لجوج را میشنید تا جایی که حتی فرصت نکرد متوجه دوباره به خواب رفتن خود شود همیشه از وقتی که عصب لگدش زده بود چون این حالی پیدا می کرد. وقتی آدم می دیگر هیچ راهی برای سنجش زمان وجود ندارد چهار هفته پس از آن که مرد سیاه پوست از آمدن به دستی ارکستر خودداری کرد نابو به شانه کردن دم یکی از عصب ها برداخت هرگز بیش از این دست به این کار نزده بود تنها تیمارشان می کرد و در زمن آوازش را سر می داد روز چهارشنبه به بازار رفته بود و پس از دیدن شانه ای با خود گفته بود این شانه برای شانه کردن دوم اسبا مناسب است و همه این بلاها ده یا پانزده سال پیش با لگد اسبی بر سرش آمد لگدی که دا آخر عمر او را دچار اختلال حواس کرد کسی در خانه گفت چه خوب بود که همان روز با لگده اصمی و این جوری وقیه عمرش را به مزخرف و دریوری گفتن نمی گذارند. اما از روزی که زندانیش کردیم دیگر کسی او را ندیده بود فقط ما میدانستیم که او آنجاست زندانی شده در اتاق و از آن پس دخترک گرامافون را دوباره راه نینداخته بود اما در خانه ما به شناختن رمزان علاقه خیلی کمی نشان میدادیم. نابورا مثل یک اسب زندانی کرده بودیم. انگار آن لگت کندی و تنبلیش را به او منتقل کرده بود و نقش روی پیشانی نابو نشانه تمامی حماقت اسبا بود. خوی حیوانی. و ما در میان آن چهار دیواری از دنیا جدایش کرده بودیم. گویی بران بودیم که او از در حبس بودن بمیرد چرا که باندازه کافی خون سرد و بیاطفه نبودیم تا او را به شیوه های دیگر بکشیم. چهارده سال به این من گذشت تا اینکه یکی از بچهها بزرگتر شد و گفت میل شدیدی به دیدن قیافه نابو دارد و در را باز کرد. نابو دوبار آن مرد را دید. گفت: اسبی مرا لگت زد و آن مرد گفت: قرن هاست این حرف را میزنی و در این زمن ما در دسته یک انتظار تو را کشیدیم. نابو آیش را دوباره تکان داد. پیشانی زخمیش را بار دیگر در کومه یونج فرو برد. به فکر فرو رفت و ناگهان به خاطر آورد که چه ماجراهایی برایش اتفاق افتاده است. نابو گفت اولین بار بود که دم اسبی را شانه می کردم. و آن مرد گفت اینطور دلمان میخواست چون در آن حال تو میآمدی و در دسته کور آواز میخواندی و نابو گفت نمیبایست شانه را می خریدم. و آن مرد گفت به حال بر حسب تصادف آن را پیدا می کردی. ما تصمیم گرفته بودیم که تو شانه را پیدا بکنی و دم اسبها را شانه بزنی و نابو گفت قبلا هرگز پشت سرشان نایستاده بودم و مرد کمچنان آرام بود و هنوز بی و بی از خود نشان نداده بود گفت اما تو درست پشت سرشان استادیان عصف لگدت زد این تنها راه آمدند به دست یک بود و این گفتگوی سخت دلانه و هر روزه ادامه داشت تا دا اینکه کسی در خانه گفت حتما پانزده سالی می شود که کسی آن در را باز نکرده است دخترک اصلا بزرگ نشده بود، سنش نشستی گذشته بود و کم کم افزردگی در پلک ششمانش را میافد. وقتی آنها در را گشودند، نشسته بود به دیوار خیرمانده بود. نفس پر صدایی کشید و صورتش را به طرف دیگر چلخاند و انگامی که آنها در را بستند دوباره گفتند نابو آرام است، دیگر چیزی انتو تکن نمیخورد. یکی از همین روزها هم میمیرد و ما، مگر از بویش بتوانیم بگوییم که مرده و یکی گفت از روی غذا هم میتوانیم بفهمیم هرگز دست از خوردن بر نداشته اینطوری به او خوش میگذرد. در به روی خود بسته بیان که کسی به زحمتش بشود از قسمت پشت اتاق هم به اندازه کافی روشنایی به درون میتابد و از به همین تریخ بود جز اینکه که دختره به طرف درخی رو بود و در این حال بخارهای گرم را که از میان شکاف ها می به بینی میکشید. دخترک چون این حال و وضعی داشت که یک روز تو زود صدای زنگ داری در اتاق نشیمن شنیدیم که مثل بهم به خوردن دو جام برنجی بود و یادمان آمد که این همان صدایی است که پانزده سال پیش وقتی که نبوداشت داشت گرامافون را کوک می کرد شنیده بودیم بلند شدیم چراغ را روشن کردیم و نخستین ریتم های آواز فراموش شده به گوش من خورد. آواز هزینی که مدتی بس دراز در صفحه های مرده و بیروح افتاده بود. آواز اوج گرفت هر لحظه صافتر و پر کششتر می شد تا اینکه در آن دم که ما به اتاق نشیمن رسیدیم صدای خشک به گوش رسید. و ما هنوز صدای گرامافون را میشنیدیم و دخترک را در آن گوشه کنار گرامافون دیدیم که به دیوار نگاه میکرد و دسته گرامافون را گرفته بود ما حرفی نزدیم اما وقتی به اتاق‌هایمان برمیگشتیم یادمان آمد که یک وقتی کسی به ما گفته بود که خود دخترک میداند چجوری گرامافون را راه بیاندازد با این فکر بیدار ماندیم و به آهنگ فرسوده و کوتاهی که صفحه ای برمیخواست که همچنان روی فنر شکسته ای می میچرخید گوش سپارتیم روز قبل آنها در را باز کردند بوی گندیده تن مورد ای بلند شد کسی که در را شده بود فریاد زد نبو نبو اما جوابی از آن تو نیامد کنار در اشخوااب خاری افتاده بود هر روز سه بار بشقاب پر از غذا را زیر در میگذاشتند و سه بار در روز بشقاب خالی دوباره سر جایش بود. به این طریق ما از زنده بودن نابوبا خبر می شدیم. اما این هیچ راه دیگری نداشتیم. دیگر نه صدای حرکتی از توی اتاق به گوش می رسید و نه صدای آوازی. و شاید پس از بستن دوباره در بود. که نابو مرد گفت نمی توانم به دسته بیایم و اون مرد پرسید که چرا و نابو گفت برای اینکه کفش ندارم و مرد در حالی که پایش را بلند می کرد گفت اینجا کسی کفش پایش نمی کند و نابو کف سفت و زرد رنگ پای برهنه او را که بلند کرده بود دید مرد گفت من اینجا برای تو انتظاری ابدی کشیدم نابو گفت همین یک لحظه پیش بود که اسب لگدم زد حالا کمی آب به سر و صورتم میزنم و انها را برای گردش بیرون میبرم و مرد گفت عصبها دیگر نیازی به تو ندارند دیگر آنجا اسبی وجود ندارد تو تنها کسی هستی که بایستی هم راه ما بیایی و نابو گفت اسبها باید اینجا باشند نیمخیز شد و دستهایش را میان کومه یونجه فرو کرد و در این حال آن مرد گفت پانزده سال آزگار کسی بالای سر اسبها نبوده که مواظبشان باشد اما نبو در حالی که زمین زیر کومه را با دستهایش میخراشید گفت شاید باید هنوز اینجا باشد آن مرد گفت آنها در استعب را پانزده سال پیش بستند حالا پر از آشغال و خرت و پرت است و نابو گفت در فاصله یک بعد از ظهر آشغال از کجا آمده؟ تا شانه را پیدا نکنم از اینجا بیرون نمیروم روز بعد پس از آن که دوباره در را بستند بار دیگر صدای جنب جوش از توی اتاق شنیده شد پس از آن کسی از جای اشتکان نخورد وقتی صدای اولین جیر جیر در بلند شد باز هم کسی چیزی نگفت و در بر اثر فشار فوقلاده داشت از جا کنده می شد. از سوی اتاق صدایی شبیه به نفسهای بریده بریده ایوانی به دام افتاده به گوش می رسید سرانجام ناله لولاهای زنگ زده در بلند شد همچنان که آنها در هم می شکستند، بار دیگر نبو سرش را تکان داد و گفت تا شانه را پیدا نکنم به دسته کور نخواهم آمد باید جایی این بر باشد و به کاویدن کومی اونجا پرداخت آن را به هم ریخت زمین را کند تا اینکان مرد گفت بسیار خوب نابو اگر برای آمدن به دسته کور تنها چیزی که منتظرش هستی پیدا کردن شانه است برو دنبالش بگرد در این دم به جلو خم شد و چهرش از غروری سبورانه تیره شد. برو جلو نابو، ببینم کی جلو تو را میگیرد. آنگاه در از جا کنده شد و سیاه پوستی و وحشی با نشان زخمی زننده بر روی پیشانیش علا رقم اینکه که سال گذشته بود. همچنان که به در و دیوار میخورد بیرون آمد با مشتهای گره کرده و تهدید آمیز هنوز با همان تنابی که پانزده سال پیش او را بسته بودند وقتی که به سرک سیاهی بود که از اسبها ها مراقبت می کرد و پیش از آن که حیات برسد. از کنار دخترک گذشت طور نشسته بود دستی محفر گرامافون هنوز از شب قبل دستش بود وقتی دخترک قدرت و توان سیاه بی بند و رها شده رادی چیزی به خاطرش آمد که یک وقتی بایستی کلمه ای بوده باشد و سیاه خود را به حیات رساند. پیش از آن که سبر را پیدا کند پیش از آن که آینه اتاق نشیمن را با شانههایش نقش زمین کند اما بیان که دخترک را ببیند نه کنار گرامافون و در آینه و رو به آفتاب ایستاد با چشمان بسته کور همچنان که توی اتاق صدای آینه شکست امتداد داشت و بی هوا شروع به دویدن کرد مثل به چشم بسته از روی غریزه در پی در استبل بود که در طول پانزده سال گرفتار بند بودن از خاطرش مف شده بود اما غریزش آن را از یاد نبرده بود از همان روز پرت و دور که دوم عصب کرده بود و بقیه عمرش را گیج و منک شده بود و پس از آن که مثل گاوه نره چشم ای در اتاقی بر از چراغ آن همه برای ناگهانی زوال و از هم پاشیدگی هرج را پشت گذاشت به حیات استبل رسید. هنوز استبل را پیدا نکرده بود و با خشمی توفانی با همان خشمی که آینه را بر زمین کوفته بود به کندن زمین پرداخت. فکر می کرد که با کندن و خراشیدن زمین میتواند دوباره بوی شاشمادیان را بلند کند. تا اینکه سرانجام به در استعب رسید و آن را بیدرنگ، هل داد به رو توی استبل افتاد. شاید در سکرات مرگ بود اما هنوز از آن درند خوی جانورانش که لحظه پیش او را از شنیدن صدای دخترک باز داشته بود، گیج و مقشوش بود. دخترک وقتی صدای گذشتن او را شنید، دسته محور را بلند کرد و با حالتی غریب به خاطر آورد. اما بیان که از سندر بخورد، بیان که دهانش به دسته گرامافون را در هوا چرخاند و تنها کلمه را که در زندگیش یاد گرفته بود که بگوید به یاد آورد و از توی اتاق نشیمن فریاد زد نبا، نبا